Up to the summer این حتما اسمی شبیه به افعال اسم شبیه به, به. حالا اسمایی که آ... عملهای نسبی و رفتی میکنن و شبیه به فعلا پنج اسم رو اینجا نام میبریم و هيا خمساتون تونیس این هم پنج تا مثل مفعس قبل اول اولین اسمی که عمل میکنه مثل فیل نسف و رحمیده مستر است مستر خودش پایه و احساس دن هم هست ها فیلی از مستر مشتره باشه هل مستر و هوا اسم لن حدس اسم است برای حدس این کار معنای مستری آنچه که حادث میشه میده. عملی که اتفاق میفته اسمش برای حدث یعنی معنای مصداری الضی حدثی که اشتقا منحل به اونی که مشتق شده از او جدا شده از او چی؟ فعل ازش مشتق ازش مشتق میشه. پس مستر عبارت است از اسم برای اون عمل معنای مستریگی که فعل از او مشتقی پایین نگاه کنید نوشته یعنی بل هده است میگه منظورش از هده یعنی یعنی یعنی یک صدر فعل مزرگی یک صدر است قصد کرده آقای شیخ باها با هده است معنن قائمان به غیره معنایی که قائم است به بل. معنایی که قائم است به غیر یعنی مثلا زدن زدن باید قائم باشه به کی به قیل ا و زدن به تنهایی به وجود نمید باید زید و عمری باشه که زدن در او پرقوق میده معنی قائم به قیل سوا اون صدر انهو حالا میخواد این معنایی که قائمه به غیر میشه از نوع صدوریش باشه که از اون غیر صادر میشه بیرون میاد که از ولی منش. مثل زدن رفتن اون نمیستو یا از چیزهایی باشه که ساده نمیشه کتور مثل بلند قدیم واقعاً کوتاهی, بلندی کوتاهی. ها بلندی این اینا از بیل های از معانی مصدریه که در واقع قیام پیدا میکنه به اون شخص جوهری که هست از اون ارزیادی که در اون جوهر قیام پیدا میکنه نه اینکه از او صادر بشه مثل مردن از پس اسم است برای حدث هلسی که اشتغال میبُزه یا عمل عمل فعیل مستر عمل فعل خودشون میکنه حالا اگه فعلش چیه لازم بوده این هم فقط یه دونه فعال. اگه فعلش متعدی به یه مفعول بوده این فعیل و یه مفعول دو تا فعیل و دو مفعول سه تا فعیل و سه مفعول این هم عمل فعیل خودشون فقط گفتیم که چی؟ که اکثرا 90 درصد به یکی از معمول این خودش چیه؟ اضافه میشه و باز نوت درصد اون معمولی که به اضافه میشه چیه؟ یعنی بیشتر اضافه میشه تا برد. یه عمل و عمل فعلی مطلقا مطلقا یعنی هیچگونه شرطی بگید ندارد حالا میخواد به معنای گذشته باشه، آینده باشه، ها؟ فرقی نمی کن. مشخص؟ یعنی به معنای ماضی باشه؟ بگید اعجبنی زر بزیدن امرن امسه. اعجبنی زر بزیدن امرن امسه. خوشم اومد از زدن زید، امر را دیدون. ضرب اضافه شده به زید امرم مفتولش زید فارش. یا همین جا به جای امسه بگید الان او قدن باز هم درست یعنی خوشم میاد از زدن زید الان یا قدن پس بنابراین مستر چون خودش زمان ندارد با حرص زمان عملش رو مطلب الا ازاکان مفعولا مطلقا مگر در هنگامی که اون مستر الا ازاکان مفعولا این الا استثنائی از روی یعمل و حمل و فعیل یعمل و مستر عمل و مستر عمل و شد میکنه مطلب مگر در هنگامی که در همه وقت این کار میکنه مگر هنگامی که استثنای مفرقه و این ازاز ظرف هست داره اون یحمده شرفیه هم دیگه نیست از استسنای از مفرده ازاکان مفعولا مطلقه مطلق. مگر هنگامی که اون مستر چی شده باشه مفعولا مطلق شده باشه که اگر مفعولا مطلق شد دیگه عمل بکن بگیری نشخص مستری که مفعولا میگه مفعول و مطلق نیست کجا عمل نمیکنه میگه الا اذا بعد بدل عن نه استثنای از اون ال قبله گفت مستر عمل فعلشون رو میکنه مطلقا بعد گفت یه مستر از عمل فعلش رو نمیکنه کدوم مصدره مستری که مفعول مطلق شده مثل ضرب تو ضربند بعد میگه مفعول مطلق ها هم یه اسمش عمل میکنه آها استثنای از گو مگر مفعول مطلق شده باشه مگر هنگامی که باشد اون مفعول و مطلق بدلن منده هنگامی که اون مفعول مطلق مفعول مطلق بدل از فعل باشه یادتونه مفعول و مطلق سر دست بود یکیش چی بود؟ تحجیلی نوعی عددی یه مفعول مطلق هم داشتیم یادتون باشه گفتیم جای فعل خودشون میگیره مثل سقین و رعین و این ها. ها گردتون افتاد یا نه نیابتی از بکنه اگر مقبول و مطلق نیابت از فعل خودش بکنه عملش رو بکنه مشکلی میگه فقط اینجا دوتا بحثه الان اگر من برگشتم گفتم زربن زیدن زربن زیدن این زربن نشسته جای چی؟ جای ازره بود یعنی ازره بود زربن زیدن ها و این زیدن الان عمل کرده مفعوله حالا مفعول اون ازرگوی مقدره آه. یعنی مفعول اون منوبه یا مفعول این نایبه یعنی که سرکن یعنی میگه فروجه هم دو بچه مگر زمانی که باشد زمین داخل کانه که میتواره ازاکانه مفعول مقدر مگر زمانی که باشد اون مفعول و مطلق بدل از فعل اگر بدل از فعل بود چی میشه؟ فوجهان دو بچه یه بحثش اینه که خود فعل مقدره که اصل است عمل میکنه و این مفعول و مطلق بازم عمل نمیکنه بنابراین که اصل در عمل فعل و تا زمانی که فعل هست حالا چه مذكور چه مقدر عمل ماله فعل یه ادن میگن نه اون دیگه رفته هرچی قدرت داشته تفریز کرده به این مستر به این مفعول و مطلق این مفعول مطلق قادره و عمل کرده شد پس چی شد گفتیم مستر عمل فهره خودشون میکنه مگر هنگامی که مفعول و مطلق مفعول و مطلق عمل نمیکنه. باز گفتیم مفعول مطلق در یه صورت عمل میکنه یعنی بحثی هست اونم صورتیه که جای فعل خودش گرفته باشه نیابتی باشه در اینجا دوتا بحثه. که آیا عمل رو بدیم به اصل یا عمل بدیم به فرعه بگیم خود فعل عمل کرده در این زربن زیدن زیدن رو نستده یا بگیم چی؟ نه فعل عمل نکرده بلکه همین مخبول رو محتمل تمامش حالا طریقه استعمال مستدنه استعمال مستر به چه شده؟ ول اکثر و انیوزاف الا فائله من یادتونی گفتن که درصد مستر اضافه میشه به چی؟ فائل فائلش لبزم مجبور محلن چی چی؟ محل ول اکثر و انیوزاف الا فائله اضافه الا بایده بگیم چیز؟ عجبنی زر بزیده بگیم همون عجبنی زر بزیده همون از این اکثر اضافه میشه به بایده شما چی میفهمید؟ <تصفح> <تصفح> که جاید پس اضافه بشه مقبوله. مفهوله شد یعنی همین مثال عجبنی زر بزیده امراره بگیم چیز؟ اعجابنی زرب و عمرن زیدون این همین باز از این اکثر میفهمیم که اکثران اضافه میشه به فایدش یعنی جایز از قلیدن اضافه اصلا نشه به که خیلی کمه. بگیم اعجابنی که زربون زیدون عمرن اعجابنی زربون زیدون عمرن بگیم هم شده پس اینا طرق استعماله بعد هم دقت کنید خیلی از مواقع میشه که اصلا فائلش حض میشه فائلش نیست مستق اتامون فی یوم زیمسقبت یکیمند ایت آمون، یعنی آم فی یومن متعلق و متعلق آم. به زی مسقبت، مسقبه یعنی جو، یعنی زی جو است. یوم. یکی من محبور. که، معروفی ات آمین. ات زی مسقبت. و بولت آمونه فائلت آمون کن این یه ملایت قدم و معمول رو گوه معمول مستر بر مستر مقدم علتش رو گفتیم چرا؟ به دلیل اینکه مستر در تحویل چیه؟ بلکه در ترجیب ببینید اگه ان مستری یه وفه مثلا ان یزروه ببریمش بگیم به طرف مستری اینوش میگرد این عمل چیه؟ تحویل میگن هن مصدریه با ما بعد خودش تعویض به مصدر. چطور؟ اگر مصدر رو برگردونیم به هن مصدریه و به مثلا ضرب رو برگردونیم به چی؟ به انغذر. ضرب رو دن عمرو رو برگردونیم انغذره و زید و عمرو. یک پیو فرقی نمی‌کنه. برگرده بهن مصدریه باشه. میره بهش میگه چی؟ ترجی اصطلاحا بهش میگن ترجی چون مصدر اگر بندازیمش تو لوله آزمایش یان مصدریه در میاد یه فعل هر مصدری رو بندازیمین در یعنی مصدری یه فعل پس ان مصدریه در ذات مصدر چیه وجود داره ان مصدریه در ذات مصدر وجود داره که بندازیم تو لوله آزمایش تجزیه‌اش می‌کنیم ان مصدری رو به عن مسترینگی دارای صدارت خود مستر هم دارای صدارت میشه آه. چون عن مسترینگی صدارت دارد مشابه او هم صدارت لذا معمول مستر بر مستر مقدم مگر جارو مجدول و زرد باشه اگه جارو مجدول و زرد باشه خوندید جارو مجدول و زرد دارای چی هم؟ مصعب این ها میتونه. داریم ولا تأخذ کن ولا تأخذ کن به ما بزنید این مرد و زن زانیه رو و عذابشون هم یه ده از مومنین ببینن ولا تأخذ کن به ما رحبتون و هیچ رحبت و رحمتی شما رو نسبت به اینها نگه حشم خدا رو محکم جاری لا تنخذ کن به ما رحبتون این به ما متعلق به رحبتون میده که مقدم شد فلم ما قلق محفو از تحیب محفو متعلق و از تحیب و موارد متعلق یکیش رو یادت یاد میگیدید که جار و مجدور و زد مستثناس میتونه و مستر محفو بلا یتقدم محموره علاقه و اعماره معلامه زعیب اینم باز عمل دادن مستر موقعی که با علف لامه چیه ضعیفه اضافه بشه خیلی خیلی زیاد اضافه نشه تنوین داشته باشه کمتر آه؟ و اگر علف لام داشته باشه جنبه اسمیتش زیاد میشه دیگه شباحتش به چیه کم میشه لذا عملش میشه ضعیف و اعمالهو مالفه و لام ضعیف کقاو بگید زعیف و نکایت اعداء بود یخال و لفراره یراخل اچه یخال و لفراره یراخل اچه زعیف و نکایت بوده چی؟ هو زعیف و نکایت این شعر خوندیم ها خوبه زعیف و نکایت نکایه چی؟ ارتغام گرفتن میگه او ضعیف است انتقام گرفتنش دشمنانش با الان انگیایه عمل کرده در اعدا مستر با اسلام عمل کنه و نصب بده چیه همه ضعیفه میگه او فوا مبتدا که حزم شده ضعیف نکایته خبر شه اعدا خوبی ما بورا نکوهه از یخال فراره يراخي العجل يخالف ضمير فاعلش الفراره مفعول اول افعال غلوزه يراخي العجله يراخي ف ضمير فرار فاعلش العجل مفعولش این جمله یراخ العجل مفعول ثانیه افعال میگه گمان میبرد این شخص ضعیف که نمیتونه از دشمنانش انتقام بگیره و از میدون جنگ فرار میکنه گمان میبرد که چی؟ یخال و الفراره یراخه عجل گمان میبره که فرار کردن عجل او مرگ او روز کار میکنه به تأخیر میکنه یراخ سوست میکنه به تأخیر میندازه مرگ او روی تو مرگ اگر بیاد بله کنتم بی بروجین مشیده سراغ خواهد آمد اسرائیل در دیوار براش مانه نیست خب اعماله و معلامه زدید بریم سر دوم و سبا که خوندیم دو دوتا رو از و سادست اسم الواهل و مفهول اسم الواهل و مفهولی باشه گفتیم اینا چیه؟ به معنای حال و اگر باشه و تکیه بکنه به اون اشیا ها میتونه عمل کنه ولی اگر ما الفلام محصول برزدهش در آمد چی میشه اول میکنه مونتونه میگه از و از اسم الفائل برمام اسم الفائل مادر لعلاحد هست اسم فائل اونیه که دلالت بر معنای مستری میکنه و فائلیه و بر فائل اون مستر هم دلالت یعنی هم فاعل کار میش، بالاگه نمیگفت، اینو گفت ظالبن یعنی یک مرده، یعنی واهمه، زننده، یعنی یک مرد زننده. یعنی هم فاعل کار رو بیان میکنه و هم خود کار رو. اما معنا اینو گذاشت که صفت مشبهه خارج چه؟ چون صفت مشبهه هم دلالت بر حدث میکنه و واقعه میشه. اما علا معنا الوجود نیست، بلکه علا معنا فعین کانه سلطن لعل اگر اسم فائل سله علف لام باشه آه. یعنی علف لام موصول بر سرش در اومده باشه عمل مطلقا، عمل میکنه مطلقا، مطلقا یه چی؟ یعنی بدونه این شرط. شرط لازم نداره حالا مازی باشه، حال باشه، مستقبل باشه اعتماد بکنه یا اعتماد نکنه در واقع اعتماد میکنه به خود الاسلام عمل میکنه هیچ بحثی توش مثل جا از زارب و زیدن امسه او الان او قدم جا از زارب و زیدن امس او الان او قدم الان از زارب که نگرد وراجه امزه باشه چه الان باشه چه قدر عمل نه اینکه ببینید اعتماد نکردن شرط اعتمادی کردن شرط بشه نیست نیست اگه اعتمادم بکنه اشکالی نداره مثلا به جای جای اینجوری بگیم زیدون از داره خوب اعتمادم مشکلی نیست قائن قناه صله تن لا و الله و الله یعنی چی؟ یعنی اگر سله یه لام نبود اگر سله یه علف لام نبود فیشتر اتو او للهال اول استفاد اگر سله یه لام نبود شرد شده فیلم مزار مثبت مصبت جزای شرد با واقع شده فاورده آنگاه تونه که دایی خون بید جایز و یوشتر اتو کونهو للهار اول استخبال شرط شده که باش اتون اسم فاعل برای زمان حال یا برای زمان استخبال و اعتمادو 호드�فاس به جای کونهو و شرط شده اعتمادوی به نفع نو استخبال اعتماد بکنه به نفع یا استخبال او مخبرن ان یا اعتماد بکنه به مخبرن ان مخبرن ان چی؟ محتدا یا اسم کانه مثلا یا اسم نه چیزی که در اصل بگید محتدا مخبرانه یا موسو یا تکیه بکنه به یک موسو یا تکیه بکنه به زلحال یه زلحالی رو به تکیه کنه چون وقتی به اینا تکیه میکنه شبیه میشه به چی؟ به فعل مزارب به چه دلیل چون فعل مزارب هم تکیه میکنه به فاعل خودش به معنا حال استقبال عمل این هم تکر میکنه به یکی از این حسامی به معنای ها رو استعبار عمل شد مثال مثلا بزنیم برای نفت ما قائمون از زیدان ما قائمون از زیدان الان او راز زیدان چیه بایلشه دیگه میدونی به ما همزه بزنید اسن فایلش که خودتون بلدید بزنید مثال چی؟ زیدون قائمان ابو زیدون قائمان عبو الان او مطلوب به بقیه هم بزنید ولا یه به معنا ماضی اگر به معنای ماضی باشه دیگه شبیه فعل مزاره نیست عمل بگید نمی کنه تو ادایه خوندید در موقع که به شکل ماضیه بچگاه کرد ولی اضافه کرده ما بعد خودش اضافه شم میشه اضافه معنوی یعنی مثلا گفت زیدون زاره با عمره زیدون زاره با امر امسه اضافه بکنیم و اضافه شم اضافه معنوی و هم برخم زیدون زیدان زاره با عمره امسه ولی ای به معنای مازی خلافن در کسایی برخلاف عزت آقای چی؟ کساییشون گفته اگر به معنی ماضی هم باشه عمل خودشو این آیه دلیل کساییه این آیهی که الان داریم میخونیم دلیل ازت آیه است میگه اسم فایل به معنی است عمل کرده پس حرف شما درست نیست همین شیخ باها چجوری جواب و کلب هم با ستون زراعیه بلوسید میگه این آیه و کلب و باستون زراعیه بلوسیل حکایت و حال ماضیه جواب میده این حکایت و حال مازی است، ماضی نیست نفت کنید میگه کلب و هم کلب و هم میگه سگ اصحاب کلب میگه سگ از اونها ها توی قار خابیده بودن سگشون هم کلب هم. سگشون باستون بست دهنده بود باز کننده بود سکر دیدید چجوری میخواه به دیگه موقع که میخواه یه دست شد جلو باز میکنه بازتون زراعی زراعین زراعین خودشو دو زراعش رو بست داده بود کجا بگید به وزید دردن مخواه الان کلبه ها مبتدا بازتون خبرش. خب این تکه کرده به مبتدا زراعیه زراعین بوده دیگه اضافه شده به ها مطبول شد اون مونش افتاده مفعول واسطونه پس عمل کرده نست دل وسیدم متعلق به فاصول خب الان شما این موقعی که این کلام رو بر پیغمبر اکرم نازل شد آیا خوابی کرد هزار سال بلکه بیشتر از عمرشون نگذشته بود گذشته نی چرا دیگه نسبت به این آیه چیه زمان زمانه ماضی است عمل کرده زمان زمان مستقبل نبوده یا زمان حال نبوده در زمان نوزول این آیه. از اونست عمل کنه میگه این حکایت حال مازیست آی کسایی نه مازی میگه یه موقع هسته شما مازی رو خبر ازش میدید خب میگه چیز زرب از ایدون. یه موقع مازی رو حکایت میکنید به شکل مستقبل این مستقبل غلابی است دیدید اینه که قسطه میگن میگه می آمد و می آمد یا داشت می آمد یا الان داره میاد. اینطور این طور میگه یه حالتی که طرف انگار از حفورش اینه که الان این قسطه داره اتفاق مثل این میمونه یک فیلمی رو در گذشته بوده شما فیلم برداری کردید الان نشون میدید الان وقتی قابل اعتماد میشه میگید اینها ببین داره میره یا رب اینکه الان دارید میگید اون سالها قبل رفته تا چرا میگید اینها داره میره زمان و حال میگید چون دارید میبینیدش میگه این درسته که ماضی بوده اما ماضی حکایتش حکایت زمان مضارع و حال شده یعنی این حال در اما حال چی چی حالی که برای این که مقاطع که شما باشید و منده که قرآن می کنیم حصور بتونیم بکنیم که همین الان انگار از خواب کفت جلو و سگشون هم در نقاط میگه گه این حکایت حال مازیست و الا مازی مغز نیست پس اگه اینجا هم عمل کرده به خاطر اینکه مزاره زمانی زمان حاله اما حالش حال حقیقی بگی نیست حال کایت حکایت حاله یعنی ماضی به شکل مزاره، حکایت شده همین قدر که و اسم مفعول اسم مفعول مادن نعلا حدث و مفعولی اونیه که دلالت بر حدث و مفعولش بکنه یعنی چیزی که این حدث برش واقعی میشه و هوفل عمل و شرک کردی این در عمل کردن و شرایط مثل اسم بایله اگر اعتماد بکنه به معنای استقبال باشه عمل میکنه یا حقایت باشه اگر اینها رو نداشت عمل نمی کند اضافه شمیشه اضافه یه مگر موقعی که سله هر افلام اگر سله هر شد عمل میکنه منطبا اینا شرایط اسمه اقراب و صفات صفت صفات مشفه خوندی و یه مادر نعلا حدثیم چی که که بر حدث میکنه معنای مستدیم و قاهلی و فائلش فائل اون هده است. انجام دهنده اون هده است الامن از سبوت اونم برمعنای سبوت نبود حادث نشده و که یه از زمان رو دوام دارد سرود دارد صفت مشرفه یعنی صفت مشرفه به فائل پس یه شباهت به فائل جیه داره به اسم فایل. شبه به اسم فاید چیه؟ اینه. هر دو دلالت برچی میکنن می‌کنن؟ معرای و فاعل. این دو باید. هر دو مصدر تصمیه جمع بسته میشه. زاربان بم زاره بانه زارهون هر دو مذکر و مؤنث آه. اینا فرق های شباهتشون خب باید از همدیگه یه فرق هم داشته باشن اولین فرقشون چی بود؟ تو خوندیم هم یا یعنی؟ اسم فاید دلالت بعد حدوث میکنه صفت مشبه دلالت بعد نبود میکنه این فرق عبر. و یفتر اقو و تفتر اقو صفت مشبه جدا میشه صفت مشبه همه اسم فاعد. از اسم فاید به اینها یک به سوقه ها انه لازم بریم که به ساخته شدنش ساخته شدن صفت مشبه از چیه؟ از فعل لازم. صفت مشبه چی دارست میشه؟ فعل لازم اما از فاید هم متعذی هم لازم هم یعجب هم یعقوب و هر دو دارن اسم فاید قارمون یکی لازم میکنه اما صفت مشبه فقط مثل حسنون از حسنه لازم شریمان از کرومه یه راست این یه بر به سوق ها انه لازمه دونه که حسنه و صحبه از حسن و صحبه چرا علتشون اینه ابن شام همه میگه در کتاب کتاب مهمه میگه سبت مشبهه دلالت بچی میکنه سبوت سله موصول در واقع به جایی چی اومده؟ باید عل عل مصابیش با علزی عل ال مصابیش با چی؟ علزی بعد از علزی باید چی میاد؟ جمله سله پس بعد از علم باید جمعه سله بیاد باید یزربه میاد؟ حالا چرا ما یزربه نهی بودیم؟ زاربه نه بودیم؟ به دلیل این که علفنا شدیه به چی بود؟ هر چون شبیه به حرف تعریف بود ما دیگه برسر فیل درش نه یه بردیم برسر شبیه فیل درش رو ببینیم اسم فائل. و اون اسم شبیه به فعل بود پس چیزی که میخواست فیله یه بشه باید شبیه به فعل باشد چرا تو جانشین فعل شده اومده جایی نشسته که فیل میشینه اونجا چون و صفت مشبه شبیه به فیل چون صفت مشبه شدیه به فیر نیست به این دنیلی که صفت مشبه دلالت و ثبوت میکنه و فیر دلالت و ثبوت پس چون صفت مشبه دلالت و ثبوت میکنه و فیر دلالت و ثبوت نداره صفت مشبه شباهتش به فیر زیب هست و از طرفی چون علف لام م... و سلش باید جمله باشد و ما جمله نیاوردیم یعنی جمله فیلیه نیاوردیم به خاطر این بود که چی؟ الاسلام شبیه به حرف تریفیم مجبور شدیم چیزی بیاریم که شبیه به فیله اما خود فیل نیست یعنی از یه طرف مراهات موضوع بودنشو کردیم و شبیه به فیل آوردیم از یه طرف هم مراهات همشکلیشو با علفنام تعریف کردیم و این اسم برزرش کردیم اسم باید و صفت مشبر نمیشه اینجا گذاشت چرا سن شدیه به ده؟ این حکمت داشت اولا اینها باید هم تو خوب حکمت کاری که چرا علفنام و صفت مشبر علفنام موضوع؟ خب کونه ها سلطن در. این هم فرق گفت اما الاسلامی که بسر اسم فایل اسم مبهول در مهار الاسلامی چیه؟ مصور و به عمل ها غیر شرط زمانه اسم فایل شرط عملش چی بود؟ حال یا استقبال ولی صفت مشبه این شرط بوده که نداره اعتماد شرطش ها که اعتماد کنه اما زمان شرطش نیست به چه در این زمان شرطش نیست؟ به دلیل این که ثبت مشبه سبوت رو ببهمونه قید زمان براش امکان نمیشه بگیم حسنان امسه یا بگیم حسنان الهان نه یا بگیم حسنون اونقدر اگه قید به یه زمان رو بزنیم ودوسی میشه یه سبوتی و به عمل آمین قید شد زمان و به مخالفت فعله ها فعله ها من بردید ببینید اسم فائل این عمل فیل خودشو میکنه فعلش لازم اونم لازم فعلش متعدی اونم هم متعدی مگه نایی دید کمتیم یه عمل و عمله فیله ها فیلی. عمل رو میکنه اما صفت مشبهه برخلاف عمل فیلش انجام میدونه الان این مثال نگاه کنید جا رجالون حسنون وجه هون جا رجلون حسنون وجه ه از نوع حسنه روسته؟ چرا چون دو ترابط داره یکی در داخل حسن مستطل داره یکی چی؟ های و این وجه هون منصوب بودنش بنابرای چیه؟ شبیه به مفغول ببینید صفت مشبهی میتونه منصوب برداره و شبیه به مفغول بشه اما اگر خود فعلش بیاد خود فعل قادر نیست شبیه به برده. از این با فعل خودش در عمل چیه؟ مخالب فعلش شبیه به مخبول ورده اما این شبیه به مخبول که چیه؟ فعله و به مخالفت فعلها فعل عمل و به عدم جریان علت مزاره فلوزن الاروزی فلوزن الاروزی وزن عروضی داریم یعنی وزنی که دو در حرکات و سکون با هم یکی هست وزن عروضی یعنی وزنی که چی؟ دو تا کلمه در حرکات و سکون با هم چی هست؟ برامر اسم فائل با فعل مزارد همیشه در وزن عروضی یکی هم. اسم فائل با فعلش همیشه در وزن عروضی مصابی هم یکمی جرعیان دارن حالا شما اسم فائل مثلا بینید زاره بون با یزره بون از نظر حرکات سکون یکی هم اولی متحده اونم متحده دومی ساکن اونم ساکن ها از جهت حرکات سکون با همچی هم یکی هم. اسم فائل با فیل مزاریده اما صفت مشبهه اینطور صفت مشبهه وزن عروضی درش معتبر بگیر نیست یعنی چی معتبر نیست یعنی ممکن مطابق باشه ممکن مطابق نمیشه یه جایی ممکنه که صفت مشبهه بگیر مطابق با فعل مضارع بیاد یه جایی ممکن مطابق بگیر نه ها. مثلا حسنون آیا با فعل مضارع کیه با یحنون کریمون با یک نمو نه پس برای این ممکنه مطابق بیاد ممکنه نه. و به عدم جریان ها علل مزاره نیست که جریانش برشکت دل مزارهش در وزنه باشه ممکنه باشه ممکنه نباشه رسیدیم سر تفسیرتون همون دیشده وشی که تو کتاب ادایه از دون جدول این کتاب من برای تا کنم شد اینه که خوب مباحث خوب نگاه میکنید فردا این محض که میخواند بخونیم دیگه با قول محروب گیری نداشته باشیم این ما حسابی دوزید دانیم حواشی اون طرف خودیم حتما میخوانید و میادید سریک داستا رسیه 29 هم